دوستان پرعرج بزم شاعران سلام مشتاقانه و سمیمانه مرا بپذیرید پس از سلام باید به استهزارتان برسانم که پاسخ به سوالات شنوندگان ارجمند در حوصله این برنامه نیست اجازه بفرمایید که از جواب دادن به نامه ها معذور باشید شاید در انتظار باشید که میهمان گرانقدر و شاعران و گویندگان و هنرمندان بزم این هفته را بشناسید چه بهتر که این هفته معرفی را به خود یاران هم بزم واگذار کنیم آید دکتر بنده میهمان هفته معلم دکتر محمد خزائیلی خانه رنگین ادب را چه به حظ میهمان است میهمان را چه به از مائده این خان است بله بله بسیار بسیار معرفیه شاعرانه ای بود. بله. بنده حسین شاه‌سیدی متولد به سال 1302 در شهرستان عراق و از شما تپنهون این که زادگاه خودم رو تصریح کردم از این نظر است که موجب افتخار بنده است که همشهری ارجمندم های دکتر خزائیلی میهمان هفته هستند و این تصریح از این نظر بود. ایشون محل عراق هستن؟ بله بله بله. و هزار مجهول ما این هم اضافه شد به صورت معلوم البته این یکی از مجهولاتمون کم شد بنده پرویز خوایفی لیسان صدویات فارسی هستم و در اداره فرهنگ مشغول تدریس هستم و تا آنجا که لازمه مختصرا حرص میکنم از همه مهمتر همشهری حافظ بزرگوار شیرازی هستم بعد همطور که آقای خواهی فرمودن از شیراز تشریف رو به دعوت بنده بده این برنامه شرکت فرمودن بنده نصرت الله نو متولد سمنانم من جاله هنر پیش ای راژیو ایران هستم من رضایان گوینده منم پرویز بهرام هستم آقای نوحیان مندانه که شما من فرهنگ شریف فرهنگ شریف بله منم گلپاست. گلپا گلپایگانی. هست گلپا اینه گلپایگانی مخفف گلپایگانیه گلپا یعنی برای بنده عباس شاپوری نوازنده ویولن هستن برای امروز آقای عباس شاپوری هم در این بحث شرکت دارن و ویولن خوان نواخت برای اولین بار در این برنامه ضمانت آقای فهیم سرپرست ضبط این برنامه هستند و از ابتدای برنامه بزمشا شاعران این زحمت به عهده ایشان با شده بوده و فراموش میکردم که ازشان نامی ببرم یعنی در استدای رادیویی تهیه کننده این برنامه است. حالا من با اجازه شماندقان عزیز از جناب آیدوکر خزائلی که باید گفت یکی از چهره های درخشان در ادب ممنکت هستند باید خواهش بکنم که با لطفی که فرمودند و در بعد ما رو افتتاه بفرما. جناب دکتر یک مطلبی بفرمایید اگر حالش هست اگر نیست در اواسط برنامه هر جور میل حضرات آی آیدوکتور که همیشه حال دارن. بنده آه. همیشه اهل حالم ولی نه حال در مقابل استقبال. ف نه حال به معنی عیش بلکه اهل حال عرفانی هستم. بفرمایید بزمم نظر حال همینه. بنده حسب الممول بایست خاطره ای بگم و خاطره هم خوب است که مربوط به شعر و شاعری باشی یه سال بنده معمولیت پیدا کردم از عراق و اونا شد که وظیفه تعلیم خودم رو در خمین انجام بده در خمین شاعری توانا بود حتماً انمای شیخوا سیدی همشون رو میشناسن آقای اعتماد طیشان تقللست بله واقعا چاوره یه کتابی هست که چاپ کردن بله بل. خاطرهاشون حالا هستند و با تبرکان می توان گفتش که آثار ایشون از میان نرفت بله ایشون بالاخره بودند در خمین هم اون روزها وسایل تفریح دیگری نبود عده زیادی از کسانی که اهل عدب بودند بعد مختصر زوغ دور آقای اعتماد پریشان جمع می شدند و این خود شده بود یک محفل ادبی به علاوه تقریبا می شود باید گرداننده همه امور سیاسی و اجتماعی خمه اینها بناشون بود که هر کس به این شهر وارد می شود دست جمعی میرفتن به دیدنش و ترتیب یک مصاحبه ادبی می دادند اما به این ترتیب که کتابی باز می کردن مشغول شدن به غلط خواندن تا ببینن که طرف مقابل و چجوری اظهار نظر می کنه اتباقا وقتی بنده وارد شهر خمین شدم اینها آمادن به دیدن من مرحوم دکتر عطایی هم که جز اون ات بود کلیات سعدی شیرازی رو باز کرد و مشغول شد به خوندن قزل معروف درخت قنچه برابرد و بلبلان مستن این اولش اون درخت قنچه برابرد و بلبلان مست بند دیدم اگر خواسته باشم که برای اینها توضیح بدم بگم قلط تلفز کردید بزرگتر از من هستن درست نیست بند هم روش دستانداختن رو پیش گرفتن گفتم بله درخت قنچه داریم درخت ریشه هم داریم بله و مراد این گلبلان بول مستند بیخود خوندید بلبلان مستند باید بخونید یعنی مستمند هستن بله و مراد اینه که دیگه درخت قنچه بار آورده است بنابر این دیگه اون حالت قنچی به گلیش رو از دست داده بلبل مستمند شده مستمند گل و, و باز از این قسمت گذشتیم و رسید به اونجا کسانی که در رمزان جام می شکستندی خوند جام میشکستندی بله بله این خادش بود یه همیه هم اضافه کنه که سه تا استمرار داشته باشه برای اینکه در ماه رمز اون آدم بایستی مستمرن جام می رو بشکنه صحیح جام عرصه... همیشکستندی مثلا باشه بله نه غیره کردم بایستی همیه محطات اگر میشد تو شعر جا بده بله. بله. که جام می رو در این حال معرفی کردم که هم اشتباه خوندید و هم ده. بعد باز این های قضی جلو رفتند و گفتن یکی درخت گل اندر میان خانه ماست که بلبلان چمن که سربهای چمن پیش قامتش پستند باز گلندر گلندار رفیقش گفت گلندر چی گلیه گفتم که معلومه این اندر اسم تفصیل است از ندای اندر و این <تصفيق> یعنی ناواجیات دیدن حریف بالاخره از خودشون حریف‌تر است باز عنوان دیگری کردی که از اونا و گفتش بله امروز در محکمه ما بحثی میکردیم یکیسی گفت طبق قانون براعت استحلال بل. بنده گفتم بله ایشون هم درست گفته معلوم است که این عملش در ماه رمزون واقع شده و سر کشیده است برای دیدن هلار و عملی کرده بعد مصادف با ماه رمزون شده میخواسته ببینه جرمه یا نه با این جریانات بلاخره ما توانستیم محفل گرمی تشکیل بدیم و اون شب رو جای دوستان خالی تا نزدیک صبح بیدار بودیم و بزله گفتیم و بزله شنیدیم و بعدا هم تونستیم که جای خودمون رو در خومین باز کنیم به طور که یکی از متعینین خومین در یک مهمانی که دعوت داشت و انتظار داشت همه تا به او باشن وقتی بنده نبودم دعوت به صفره شده بود همیشه اون حضر گفته بودن ما تا فلانی نیاد نمیمون سر سفر و این شخص متهم بهش برخورد و همون وقت اسب طلبی دو بالاخره تش بردن و هر حال حالا شد این قضیه بغزل ماویه بوده است نه خب بنده علی <تصفيق> <تصفيق> ولی معازا این شکلی شد و واسه ما خوب گرفتار خمه این خاطره بسیار بسیار متشکرم آقای کرد و... ولی برام تدایی شد که منم دو تا تهذییه به این بیان سرکار بزنم یکی اینکه یه متقریز صورت لطیفه خودش پیدا کرده و در محفلی از یه آقایی که ادعا میکرده که شعر شوهرها رو معنیشون میدونه پرسیده بودن که گربه شیر است در گرفتن موش لیچ موش است در مساف پلنگ یعنی چی؟ گفته مثل را عبالیش که پیداست گربه در گرفتن موش مثل شیره بسیار شجاعه لیچ موش هست در مساف پلنگ لیچ موش حرب وجود اون هم یه حیونی یه خود از گربه کوچیک تا یه هوا از مش بزرگتره یارو که لیشموش لشکموش مرکب کرده یه حیوان و در جای دیگه بودیم که یکی از شعر حافظو میخوند میگفت در اطراف میگو هم بوده گفتم آقا میگو که گفت حافظ میگه حدیث از مطرب و میگو و راز درکم درو گفتم آقا میگه حدیث از مطرب و میگوی و راز درکم که میگه میگو از حرف میگو و به هر حال به فنشه از این گافا زیاد میکنه و بنده دیگه وقت رو تلف نمی‌کنم و از آقای شاه زیدی چون مثل اینکه از نظر سنی باید از ایشون شروع کنیم. اصلا سمت بنده قرار شدم دیگه. که تنها بقیه دادا 14 بودم قربان. در تولدمو گفتم بله. <تصفيق> <تصفيق> این شعر اسم هست شب مادر و بنده اجازه می‌خوام از اون که قبل از خوندن شعر شأن نزولش رو در حقیقت برسول رسانده باشم. بنده چند سال پیش در خدمت آقای حمید سیاح معمولیتی داشتیم در بندر شرفخانه و داستان این شعر رو ایشون نعف کردن داره بنده سای شما منظومش کردیم بله بله بودیم و بنده فکر میکنم که این یک عبرتی باشد برای نسل جوان ما که ببینند چطور از هیچ از روزگار ارز کنم که نهاویت تایی دستی هم باشند ممکن است که به مقامات عالیه برسند برجه این داستان رو آیه همین سیاه داستان زندگی خودشونه که برای بنده نقل کردن پسری داشت مادر پیری پیر افتاده و زمینگیری پیشش کارمندی دولت کارمندی همیشه در زحمت مسکن این دو یک اتاق نمین یکی از مردم اجار نشین روزی آمد پسر به چهره شاد مجده از کار خود به مادر داد که حقوقم اضافه شد مادر میگذینین مسکنی بهتر پرسه ها دوندگی ها کرد تا دو درگاه اتاق پیدا کرد جای مادر اتاق زیرین داد جای خود را فراز آن بنهاد چند شب چون گذشت با این حال گفت مادر روی رنج و ملال پسرم نازنین دلبندم بندم نور چشمم یگان فرزندم خوابگاهت چرا جدا کردی؟ جای خود را چرا سوا کردی دوست دارم نفیر خواب تو را خواب سنگینی شباب تو را گفت فرزند مادر رنجور باشد از رحم و از مروت دور که تو از پافوتادن ناراحت همه بیست پله با زحمت سوی بالا به خاطر من دیگر این حرف های تلخ مزن چون پسر گفته های اون نشنافت کرد مادر سکوت و هیچ نگفت از غذا شب پسرز خواب پرید مادر خیش را به بالین دید. گفت این نیست بلکه رویایی است، نیم شب کار من تماشای است. گویان صحنه نیستش باور گفت: دیوانه ای مگر مادر، تو که رنجور و ناتوان بودی پله ها را چگونه پیمودی؟ گفت مادر به خواب آسوده همه شب کار من همین بوده. که برایم کنار بستر تو که شم آرام دست بر سر تو بوسه ما موی و رویت را صاف تر افکنم پتویت را مهر مادر حدیث دیرین است راستین حدیث شیرین است آفرین آفرین خانم جلال خیلی پسندیدن شیر را زحمت دومین قتچرتونو خدا خانم جلال میکشند و بیان میکنم و چه خوب کرد آقا کلمه زحمت رو بکار باید تو خوندن شعر بنده سمری هم جز زحمت نداره خوب خانم جالی عنوان دوبامه قطع شعر آقای شازیدی چیست؟ خورشید امید خورشید امید بحبه. پس اجزبیدی از آقای شاپولی خواهش بکنیم که با سازشون شعر ایشان رو همراهی کنن یعنی بیان شما رو با شعر آقای خواهش میکنم امیده من جهان هسته خورشید امید بر دلم تابید من زنده به عشق آلم افروزم روشنگر روزگار من امید با عشق امید زیستن یک عمر پیمان من است و چنگی ناحید جاریست امید در رگ جانم میمای مرا مجودم این امید بازیگر آفتاب امید است هر ذره که در فضای جان رقصید احبا. گوش دل من نوای نامیدی زاوشوب زمانه هیچ گه نشنید اگر کرخ ستمگری کند باید بر بازی کودکان اشخندی تاینی تکلیفم کردن راه نشوند فرداست که طرح تازه ای ریزد بح. بینی که بساط ناروا برچی دیدی شب بی سهر مگر هرگز خرشی کجاز صبح رو تابید شمید. شمید. از روز بنایه گمده افلاک آهنگ امید ها در آن پیچی افسوس افسوس بران که از دل بر آنکه راندومی دستت بر سااعت جان قبار غم پررشید دل ند حد به دست گر عشق به زندگی کسی ورزیید بله. <تصفيق> <شواره. تصفيق> این شعر جناب شاهیدی نذیر شعری است که پیش یعقوب کندی صوفی عرب خوانده می فلسفستان. اون شعر البته بیت اولش خب عربی است و مطلبش اینه این که همان بفرمایید ما... من قسمت دومش می‌کنم می گوید که چهار چیز از تو در چهار عضو من حلول کرده است و من نمی که قمم ناشی از کدومی بعد میگوید گوید خیال و کفی اینی و ذکر و فمی و نطق و کفی سمی و حب و قلبی بعد کندی می گوید که تو یه تقسیم فلسفی انجام دادی آقای شاهزیدی هم در این شعرشون واقعا فلسفی کار کردن هم احساس و عواطف رو به حیجان آوردن بعد تعین تکلیف کردن استدلال کردن خیلی خیلی عالی هم فلسفی بود و هم بالاخره احساسی یعنی همه قوای روانی ما رو کاملا سرشار کرد خوب از توضیح آقای دکتر خزایلی و شه آقای شاهزیدی هم متشکر حالا نوبت آقای پرویز خائفی است که هم شاعرند و در لباس شاعری میزمان این بعض ولی به عنوان یک شاعر سفر کرده از شیراز باز مهمان همه ما هستم و من خواهش میکنم که توضیحی درباره شعرشون بدم اگر که ای دارم برای ساختن شعرشون بفرمایم چون بعض شمندگان درشون میخواد بدونن آقای شعرها در چه حالی این شعر ساختن برای چی ساختن آیا در پیاد رو را میرفتن خدا نخواسته بدونه الهامی بدون انگیزه این شعر رو ساختن یا در حالتی بودن اگر که توضیح در این باره دارید بفرمایید بفرمیدر کدو دارید در باره شعرتون من آقای شایزیدی که گویا بود تمامش پیدا بود خود شعر میگفت حالا من شما اگر جنبه نامفهوم داره خودتون بفرمایید ارز کنم که من خیلی متشکرم از لطفه با آقایی که اجازه دادم به من و خواستن از من که در این برنامه شرکت کنم استعداده کردیم آقای خواهر و خستگی راه رو جدا دولت دیدار دوستان هنرمند و صاحب دلان اندیشمند و بزرگوار از من گرفت اما شعرهایی که آوردم دو قطعه است که یکیش قزل هست و آقای رضاییان اونو لطف میکنن و میخونن و این غزل چون معتقدم که شعر فارسی هنوز در غالب غزل خیلی حرف رو می شود و احساسات و عواطفی هست که فقط در غالب غزل میشه بیانش گیر و از این نظر با اینکه کارم تنها غزل نیست ولی گاهی غزلی می سازم و تا اندازی هم سر میکنم کنم تازه باشه منم شعری که خودم می خونم به نام حکایت ها و شکایت هاست که برای دختر کوچکم ارمغان ساختم. آقای رئیس شما میکروفون رو بقیه قایف بله بله جهانی که صداشون رو شنوندگان بهتر بشنم عرض کنم که اصولا من معتقد به مقدمه و سرآغاز برای شعر نیستم چون دلم نمیخواد ابهامش فدای اون سراحت بیمورد بشه ولی درباره این شعر چون در یک موقعیت خاص از زندگیم و به جهاتی و مناسباتی که وجود داشته در اون موقع ساختم مجبور شدم این چند کلمه رو بگم و حالا ضمن اینکه که شعر رو میخونم و عرضه میشه تا اندازه متوجه چگونگی این اشاره ایش کردم خواهید شد ای صبح دلپذیر، شب دیر پای رنج ایوا پس این امید منی ای گرمی پناه شب را گذشته گام توان در گمان صبح بیراه را شتافتم در سراغ راه ای باغ ناز کودکم ای آرزوی رام شعرم از عمر رفته قماگ این حکایتی است در چشم تو نجابت پنهان پرسش است دردا که هر حکایتی اکنون شکایتی است او بی امید راه دراز حیات را رنجاشنای هم سفری چاره ساز بود رفتیم و نیمه راه گسستیم نامراد ما را دریغ رنج جدایی نیاز بود خاندم در درو که قصه فرجام آشتی است گرم از دروغ شادی تلخ جدایی است خندام درو که بازی آغاز دیگری است بی سبز باغ فریب رهایی است دانستمان شکفت چراغ خیال عشق تیپای قهر خورده و دیریست مرده است افسوس برگیاد مرا دست روزگار در او به خیل باد ندامت سپرده است در خیشتن شکفتم و در خود گریستم بر حال نامراد غمه های دار خیش گر او نماند همسفر سازگار من ماندم به غمگساری خود سازگار خیش زن نغز رفته های دلنگیز توند رنج نمانده عهد به جا مند و بار درد رنگ رنگ شعله رقصان آرزو خاکستری است منده به ویران اجاق سرد اینک بهار هستی من ارمغان من چشم تو ساجسار پناهی پناهیست دلپذیر شاه خوش مراد و زمان رهایی است اینک در حسار خیال تو هم اسیر کوچک پرندگان سر تو کنون پر میزنند در تن من شادی آفرین سرشارم از ترابت گلبوی پیکرت چون پر شود نیاز تنم از تو نازنین خالی مباد خانه مشتاق چشم من از گلفشان سپید دم خنده های تو خالی مباد خلوت آغوش جان من از عطر شاد پیچر جان آشنای تو باستیرها به خانه من تو دست نرم بحاری در آشیانه من کهان شدن همه افسانه کهان شدن همه افثانه قصه قصه توست بیا بیا که حدیث تو شد فسانه من شاخه خشک گمان ریخت بر قصه او شکفته شاخه شوقم توی جوانه من بهشت بی بیتو به دیدار خلق ارzani من و تو ای ما بهشتی کنج خانه من به ناز شانه انگشت گیسویت رام است به ناز شانه انگشت گیسویت رام است تو نیز رام بیا روی شانه من خطاست حرف چلب را توان ببوسه گشود خیلی خطاست حرف چو لب را توان به بوس گشود پیام بوسه من حرف عاشقانه من بهار را تا برده خوش به بستر من بهار موسم کام است این بهانه من زورقیس تنم رسته از صلاتم ماج سکوت خلوت آغوش تو کرانه من دتان گرفت چه گویم زتان گرفت چه گویم که زندگی فرداست شبم گذشت تو فردای جاودانه من چه خوش در اونه من آمیختی چو من در من چه خوش در اونه من آمیختی چو من در من تنین نقمه سازی تو در ترانه من خیلی آفت ولی یه چیز برای من مجهور می اینجا تو داشت من داشت یه او هم داشت اون اوه بود کی بود آقای خیفی؟ اونه اونه که رفته و تو اونه که آمده <تصالح> برد خب دیگه حالا بعد از شیر بپردازیم به, به قطع آوازی لاغل بله تا بعد بریم سراغ شاعر دیگر و صحبت دیگر خب آیگر پایگانی این هفته نواد به سرکار میرسه که به این بعض شروع حالی ببخشید چیز تازه من با اینکه تذکر دادم که ردیف های موسیقی رو نمیشه عوض کرد ولی گفتم میشه که کار های گوشه های حالت های خواننده به ذوق خودش در آواز بده. باز دیدم که یکی از شونددگان در محفلی میگفت آقا اما میشه ردیف ها رو عوض کرد گفتم بنده که تذکر دادم ردیف های موسیقی همونه ولی میتونونه خواننده ذوق خودش حال یه گوشه های یک طرح های مخصووب خودش در اون آواز بده. کلرا نمونهش همین آلیپل پاییگانی که حتما این کار کردم. آنا بقولی که قبلا ازشون گرفتی چش بله چش من غزلی از آقای رو یگانه میخونم بس در مایه مخالف سهگاه مخالف سهگاه آقای شریفی شاید... حالت‌های مخصوصاتون داره چی حالتای حالا بعد شما بشنوین بعد همیشه داشتید بله هفته پیشم از آقای شریف خواهش کردیم که سازشون رو بدون مزراب بزنن ایشون یک ده زدن با ناخن و ایده تعریف کردن گفتن که یک طعم خاصی داشت در ساز و میخوام امروز از این خواهش بکنم که این کار رو بیشتر انجام بدن یعنی یک دستی با ناخون بیشتر باشید اگر میتونید که همه آوازهای گل پایگانی رو همینطور پاسخ بدید البته یه قسمتی رو بنده اجرا خواهم کرد. دایی کنه این مه گناه هم ببخش در آغوش هستی پناه هم ببخش اشک نگیری به مرگم سپار به اشکم نگیری به مرگم سپار به اشکم نبخشی به آهم ببخش. the سپیددم نظر کن به میر به موی سپیددم نظر کن به میر و سانگ به بخت سیاه هم ببر. به بخت سیاه به بخت سیاه هم آفایی آفایی آفایی آفایی حالا نوبات آقایی نو هست که تلکیف کنن بیشتر بز ما رو با اشعاری لطیف خودشون خواهش میکنم بفرماید. بعد از آغاز آقای گلپا شعر خوندن خیلی مشکله ولی من یک مصنوی میخونم خب بعد از آواز های گلپا آواز خوندن مشکله ولی این ریست باید نداره شما که نمیخون آواز بخونی چشم بله سوگند به چشمان دلانگیز تو سوگند به لبهای حوثریز تو سوگند به صحبای دوچشم پرزنازد به مجگان دل عاشق گدازد به اشکن جاله گلبرگ رویت به مشگانت به ابرویت به مویت بندام چو گلبرگ سپیدت به لبخندت به اندوهت امیدت به آهنگ صدای دلنشینت به شرم چهره شرمافرینت به چهرت روشنی بخش دل من به مهرت آفتاب محفل من به صبح روشن روی تو سوگند به شام تیره موی تو سوگند به جامم که از جفایت پرزخون است به اندوه دلم که از حد برون است به شام بی سهرگاهی که دارم به سوز شعله آهی که دارم به اشک عاشق محجور و غمناک که می لحظات زموجگان بر سر خاک به امیدت به فردای دلفروز به اشک حسرتت از رنج دیروز به خون‌هایی که پیش پای خورشید به روی خاکای سرد پاشید به پیران جوانی داد از دست به فریادی که در خلقون بشکست به اشکی که از غمت بر چهر بارم تو را چون صبح فردا دوست دارم خب دوست هنرمندم آقای شاپوری هم بیکار نشستم و من خواهش می میکنم که آقای بهرام رو همراهی کنند کجایی کجایی گل نازمن توهی مند آغوشم از پی کرد که شد چشم مخترفشان به رویای چشمان افزون گرد بیاده لبان حوث ریزتو سرافرو نیاز و تمنا شدم مراجع و دیگر خدایی نبود چه شب ها به ذکر خدایا شدم شراعی مرا راحت جان و دل تنات چشم تو بیمار شد تو بیمار بودی ولی کم مرا همه روز چون شام تار شد چداست چون مرغ بیاش در این بی کران شهر سرگشم نباشد اگر مستی چشم تو چه سازت دل بخت برگشتم نه دستی که بفشارم از روی مخ نه چشمی که جوشد در روی یک نگاه نه لبخندوی کینهی برلبی سپیده است رو خواه و دلها سیاه پاهارم گرفته است رنگ خزان بیا تا گل من شکوفا شود کجا چون تو در پهنه روزگار مرا مونس پیدا شود شب و روز من بی تو یکسان گذشت بیا تا به هر درد درمان دهیم دراو از دارم تا چه خورشید صبح به شام سیحفان پایان دهیم سیام بسیار خب آقای شاپوری بسیار بسیار از شما متشکریم و همچنین آقای بحرام با تبازگذاری کنم که شیر آقای نور رو و لذت بردید بنده با اجازه دوستان و شنوندگان عزیز قطعه ای خدا را به امر بسیاری از شنوندگان تکرار میکنم حالا نمیدونم قدرت این رو دارم که مثل دفع اولیش رو بیان بکنم یا نه برحال امتصال عمر میکنم آقا شریف لطفه فرمایی تو بنده شروع کنم خدا ای خدا ای رازدار بندگان شرم گیند ای توانایی که بر جان و جهان فرمان روایی ای خدا ای رازدار بندگان شرم جینت. ای توانایی که بر جان و جهان فرمان روایی ای خدا ای هم نوای ناله پروردگانت زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنایی الت به مشگانم به جرم روسیاهی ای پناه بی پناهان موسپید سپید روسیا هم روز و شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناو بر من وای بر من با جهانی شرم کی توانم تا به درگاهت برارم نیمه شب دست نیازی با چنین شرمندگی ها کیز دست من براید تا بجویم چاره درد دلی از چار سازی بسا شب ای بسا شب خواب نوشین گرم می غلطد به چشمم خواب می بینم چو مرقی می در آسمان ها پیکر آلودم را خواب شیرین می رو باید روح من در جستجویت می پرد تا ها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 پرثنے آلود من روح پاکم را نظر کن دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگی ها من فتور او کردم بر آستانت سر نهادم دوست دارم بندگی را با همه مهربانا مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم رو کجا آرم اگر از درگدگویی جوابم بیکسم در سایه مهر تو می جویم پناهی از خوجا یابم خدایی گر به کویت راه نیابم مهربانا با دلی به شکست رو سویتو کردم رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم بی در سایه مهر تو می جویم پناوی از کجا یابم خدایی گر به کویت ره نیابم ای خدا ای خدا ای رازدار بندگان شرگینت ای توانایی که بر جان و جهان فرمون روائی ای خدا ای هم نوای ناله پروردگانت زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنا یاران صاحب دل و شنوندگان شعر دوست در اینجا وقت بزم ما پایان میگیرد گیرد و بنده به اتفاق عدیب ارجمند جناب آقای دکتر محمد خزائلی آقایان پرویز خائفی، حسین شاه زیدی، نوح، خانم جاله، آقایان رضائیان پرویز بهرام فرهنگ شریف، عباس شاپوری و گلپایگانی از همه شما خداحافظی میکنیم و به همه شما روز بخیر میگوییم. دلتان خوش، وقتتان پیروز و لبتان خندان باد.